Love. <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام والسلام السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین الطاهرین المعصومین لا ما بقيت الله في الارض اللهم انت السلام و منك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رءا رب بلعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على الائمه الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سید شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكازم السلام على علي بن موسى الرزا. السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن الغائم المحلی. السلام عليكم يا عبد الله وَعَلَى الأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكِ عَلَيْكُمْ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ أَبَدًا مَا بَقِيتَ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا جَعَلَ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ ازמלوا اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسین عليه السلام و جعلنا من الطالبين بصارح مع الإمام اله المهدي عليه السلام قال الحسين عليه السلام صبرا على قضايك يا رب لا اله سواک یا قیاس المستقیسین مالی رب سواک ولا معبود غیرک صبرن علا حکمک یا قیاس من لا قیاس له فرازی از دعای صبح روز آشورای امام حسین علیه السلام یا مناجات ای بین امام و خدای خود در روز آشورا از صبح تا عصری که امام به شهادت رسیدن سن و فرمایشات و مطالب از اون حضرت برای ما در تاریخ باقی مونده. یکی سخن گفتن با خدا یکی گفتن با اطرافیان و اصحاب و یاران و خانواده یکی گفتن با دشمنان، مخالفین و لشکریانی که در مقابل امام بودن فرمایشات حضرت در رابطه با دشمنان و مخالفین خطبه های حضرت است که هم صبح خطبه داشتند هم عصر که خود بحث مفصلی دارد فرمایشاتی که حضرت با اصحاب و یاران و خانواده خود داشتند، اون هم باز بحث خاصی دارد اما صحبت امام علیه السلام با خدای خودش امام سجاد فرمودن طبق نقل مرهوم علامه مجلسی در بهار جلد چهل و چهار صفحه دویست و و امام سجاد فرمودن پدرم صبح روز آشورا دعاهایی را آغاز کردند و با خدای خودمت می کردند من جمله این بیان را صبرنعلاق غذاع یا یارب لا اله از یا قیاس مستقصیل. حالا همین فراز اول چند واژه بسیار مهمی در این قرار دارد که برای ما پیامها درسهایی میآوزد که در زندگی روزمره می توانیم از آن سرمشق بگیریم. یکی کلمه صبر، یکی کلمه قضای الهی، صبرا علا قضائک، قضای خدا. یکی کلمه رب یا رب، صبرا علا قضائک یا رب، یکی کلمه اله که فرمودن لا اله ها. و بعدش هم کلمه لا اله سواک یا قیاس المستقیسید. هر یک از این واجه ها در فرهنگ دینی ما شکل درستش و فهمش و ارتباطش با یک دیگر درسها دارد. حالا چه مقداریش شو توفیق پیدا کنیم با انایت حضرت حق این چند شب در این محفل نورانی با هم به بحث بنشینیم دیگه اون بستگی به توفیقات و انایت الهی برای ماست. اولین واژه صبر اتفاقا این دو کلمه صبر و قضا که در قضا و قدر ما زیاد شنیده ایم معنای بسیار غلطی شده و اون معنای غلط رواج یافتنش از معنای صحیح بیشتره و لذا اون معنای غلط بدآموزی هم داره یعنی به جای این که از این کلمه صبر در فرهنگ دینی و صبرن علا غذایک غذای الهی صبر بر غذای الهی که معنای بسیار بلند و عمیقی دارد که مثل صبح آشورایی شخصیتی مثل امام علیه السلام با اون همه عظمت و بزرگی و توحید از پروردگار اینگونه درخواست میکند این واژه اگر بد معنی شود چه بد ها خواهد داشت؟ بد معنی شدن این واژه چیست؟ صبر را به معنای تحمل و زیر بار هر امری ولو خلاف رفتن. یعنی اگر انسان در معرض ظالمی قرار گرفت یا در معرض ظلمی قرار گرفت یا در یک شرایطی حادی بود خب چاره‌ای نیست باید صبر کرد باید تحمل کرد باید زیر بار این ستم و این ظلم و این فشار ایستادگی نشون داد معمولاً در عرف عامه شاید اکثریت صبر و این گونه معنی کرده باشند غذا را هم یک معنی بسیار ناروایی کردن که از اولی بیشتر رواج پیدا کرد غلطش حالا در اولی صبر معنای درستش هم الحمدلله گفته شده بیان شده اکثریت شاید توجه پیدا کردند. ولی دومی رو متاسفانه کمتر بهش پرداختن غذا را به معنی یک امر حتمی الهی که ما درو چاره ای و اختیاری و قدرت انتخابی نداریم قضا و قدر اینجوری معنی کردن میگن مقدره دیگه قضای الهی این بوده خب چه کار کنیم پس در رابطه با آشورا هم قضای الهی این بود که امام حسین شهید بشه خب حالا شهید شد دیگه قضای الهی این بود که معاویه حکومت رو به دست بگیره امیرالمؤمنین خانه‌نشین بشه خب این گونه شد و امیرالمؤمنین خانه‌نشین شد و ها از از این هر. در صورتی که اصلا معنای صبر و معنای غذا به این معنی منفی نیست من ابتدا امشب رو صبرش کمی توزی میدم ولی بحث غذا و غذای الهی و صبر بر غذای الهی که اصل بحث ماست و ارتباط صبر بر غذای الهی با کلمه ربوبیت پروردگار و علوهیت پروردگار و ربط این با سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم قل و به رب ناس ملک ناس اله ناس در اونجا رب ناس ملک ناس اله ناس اومده چرا اول رب؟ چرا دوم ملک؟ چرا سوم اله؟ و در این دعای امام, سجاد، امام حسین علیه السلام به نقل امام سجاد دیگه ملک ذکر نشده ولی رب و اله با همون ترتیب ذکر شده اول رب بعد اله و این صبر بر غذای الهی الهی که رب است و این رب اله است این چی میخواد پیام بده که امام حسین علیه السلام صبح آشورا در غالب دعا و مناجات با خدا این گونه سخن گفته حالا قسمت اول صبر معنای درست صبر که همه توجه انشاء الله داشته اید و داریم استقامت در انتخاب هدف درست و عمل برای رسیدن به هدف درست اونجا هم استقامت تو هر دوتا استقامت صبر معنی استادگی هست به معنی استقامت هست به معنی پای فشردن هست در دو مرحله یک مرحله انتخاب هدف درست که زحمت داره افراد تحمل و ایستادگی برای انتخاب هدف درست را به خرج نمی دهند لذا زود قانع می شون. تحت تأثیر عوامل مختلف هدفی را برمی که بعد از ده سال و بیست سال و سی سال و یا آخر عمر انگشت حسرت به دندان گرفته که ای کاش را هم این نبود ای کاش مقصدم این نبود ای کاش هدفم این نمی شد خب چه شد که من این هدف را انتخاب کردم و بعد از پنجاب و شهست سال عمر صرف کردن حالا حسرت می که چرا من در موقع انتخاب هدف که عمرم را به پایش گذاشتم و خرج کردم دقت بیشتری نکردم مشکلش؟ صبر نداشتن و استقامت نداشتن حالا امشب کمی با هم میشکافیم یعنی چه ان دوم حالا اگر به کمک راه نمایان بیرونی و عوامل مؤثر درونی توانستم هدف درستی رو انتخاب کنم آیا ایستادگی در مسیر هدف درست رو داشتم اون استقامتی که برای رسیدن به اون هدف قرار واستم و به کار ببرم اینجا هم از مشکلات بزرگ بشره در طول تاریخ و بسیاری از انسان ها هم در زندگی فردیشون هم خانوادگیشون هم اجتماعیشون دچار این مشکل بوده‌اند و هستند اگر قرآن کریم میفرماید ان اللذین قالوا ربنا الله کسانی که گفتند خدا یعنی مرحلی انتخاب خدا انتخاب کردن میخوایم خدایی زندگی کنیم نمیخوایم خودخواهانه زندگی کنیم نمیخوایم طبق بهبه و اه مردم زندگی کنیم ان الذین قالوا ربنا الله الله میخوایم طبق تربیت الله زندگی کنیم این میشه مرحله انتخاب حالا اگر کسی این استقامت رو به کار برد تا به این شناخت رسید اینم که همینجوری راحت به دست نمیاد گفتن خدا یا جان بلب رسید تا جام بلب رسید چه رنج ها باید انسان ببرد تا به این نتیجه برسد که در انتخاب بگوید من جز الله ان و نسکی و محيي و مماتی لله رب العالمين ان قالو قالوا ربنا الله اما تقامو نگفتن ایستادن تو این مسیر تا اون سرمنزل مقصود رسیدن چنان ایستادگی به خرج دادن که زبان حالشون این بود دست از طلب ندارم تا کام دل براید یا جان رسد به جانان یا جان زتن دراید دست بر نمیدارم وای میستم خب این استقامت استادگی حالا این صبر در دو مرحله در زندگی انسانی یک هدف دو نحوه حرکت و عمل برای رسیدن به هدف دو باز در دو مرحله لازمه رسیدن به اون هدف و اون حرکت درست دو لازمه اجتناب برای رسیدن به اون هدف به حرکت در اون مسیر پس میشه 4 تا صبر در این 4 تا ببینید چی کار میکنه این یه کمی توضیح میخواد اول به این توضیح بندی انایتی بفرمایید تا بعد من روایات معصومین علیهم سلام را که این رو برای ما شکافته با هم بیشتر بررسی کنیم ببینید اگر امتیاز انسان را بر همه مخلوقات عالم بررسی کنید چه ملائک با همه مقاماتی که در عالم ملکوتی دارند حیوانات با همه قدرتمندی‌هایی که حیوان در عالم حیوانی داره نپاداد نباتات و گیاهان با همه زیبایی‌ها و اون همه آثار نباتی و گیاهی که در عالم گیاهی دارند جمادات با همه خاصیت که انواع جمادات در عالم خلقت دارد. چرا انسان از همیننا بالاره؟ نه جماد با انسان قابل مقایس است نه نبات با انسان قابل مقایسه است. نه حیوان با انسان قابل مقایسه است نه ملک با انسان قابل مقایسه است. لذا در ابتدای خلقت انسان ملک هم معمور است. از باب تکریم و تعظیم بر این انسان سجده کند این عظمت مال چیست؟ مال قدرت انتخاب و حرکت در مسیر انتخاب رسیدن به اون قلعه رفیعی که انتخاب کرده اما اگر انتخاب غلط بود چی؟ چی باعث میشه انتخاب غلط بشه؟ پس قدرت انتخاب... آیا حیوان قدرت انتخاب دارد نه ملک به یک معنا قدرت انتخاب داره نه ملک تو ملک بودن خودش باد سیر کنه غیر از این نمیتونه باشه حیوان تو حیات حیوانی خودش باد سیر کنه غیر از این نمیتونه باشه یه درخت گلابی بگه من امسال تصمیم گرفتم انتخاب کنم به جای گلابی سیب بدم یه درخت سیب بگه امسال تصمیم من اینه که به جای سیب آلوالو بدم نه اون مسیر معین بر مبنای قانون خلقت برای او معین شده در این سیر خلقت پیش می رود. عوامل اوامل فراهم بود رشد می کند فراهم نبود از بین میره. اما انسان است در میان همه این مخلوقات که می انتخاب کند حتی انتخاب با 180 درجه اختلاف انتخاب حق حق انتخاب باطل باطل انتخاب بین این دوتا این قدرت انسانه ما چی واعث می شود که این انسان به جای انتخاب حق باطل انتخاب کند؟ به جای انتخاب حق قاطی کنه حق و باطل با یکی دیگه گرفتاری بشر اولش اینجاست دیگه یکی از عوامل استقامت به خرج ندادن برای انتخاب درست خب استقامت به خرج دادن یعنی چی؟ انتخاب درست فکر میبره انتخاب درست کار عقلی میخواد انتخاب درست مطالعه میخواد انتخاب درست زانو زدن در معذر اساتید و بزرگان و بررسی کردن همینجوری که نمیشه آقا شما میخواید یک کار اقتصادی تو یک مثلا بازاری انجام بدید انتخاب میخواید بکنید آقا علم اقتصاد ندارید؟ با تجربه های اقتصاد ندارید؟ مشورت اقتصادی ندارید؟ کلی باید ذوابه؟ لذا بعضی بزرگترها به افراد کم تجربه تری که بیگدار با آب میزنن و بعد دچار مشکلات میشن میگن آقا جون همینجوری که نمیشه شما اگه قرار بودی یک کار اقتصادی بکنی باید بررسی میکردی آقا میخوام هدف زندگی انتخاب کنم چجوری زندگی کنم برای کی زندگی کنم چرا باید هدف من x باشه y نباشه خب این یه مقدار ایستادگی میخواد این ایستادگی دو طرف یک طرف عواملی که برای انتخاب هدف درست لازم است زحمت دارد به خودم بقبولانم تحمل زحمت را اگه کتاب خوندن لازمه زحمتش رو تقبل کنم این میشه صبر در باید انتخاب هدف باید انتخاب هدف مطالعه میخواد من خیلی وقتا با دوستان جوان دانشگاهی مطلب رو گفتم میگم عزیز من مذهبی هستی میگه بله میگم به چه دلیل از کجا فهمیدی مذهب درسته؟ اگه دلیل نداری من نیم ساعت با تو حرف زنم چهار تا شبه کنم تو مذهب و دست این چه نوع مذهبیه؟ این که عرضه چی نداره؟ عزیز من ضد مذهبی؟ بله آقاجو جو من اصلا مذهب و قبول ندارم به چه دلیل؟ تا دلیل برای من بیار که مذهب بده حالا اگه من با تو بحث کردم قانع کردم مذهب درسته جواب وجدان تو میدی؟ جواب تو میدی. آیا این همه اغلا در طول تاریخ این همه متفکرین در طول تاریخ رفتن مذهبی شدن اونا به اندازه تو نفهمیده بودن که مذهب بده یا خوبه یا او اونقدر زحمت کشیده فهمی که نسبت به درستی دین و بندگی خدا پیدا کرده در شب روزم دعا میکنه خدا کمکم کن از مسیر بندگی تو جدا نشم پس لاعقل میرفتی سوال می کردی می رفتی. این صبر باید انتخاب هدف درست صبر نباید برای انتخاب هدف درست چیه خب الان من میبینم یه مش دوستا دورور منو گرفتن شکم پرستن میفهمم شهوت پرستن میفهمم خیلی دنبال فقط لذتهای شهوانی دنیوی هن. لذا تا میام میگم اخلاق معنویت خدا حق انسانی میگه آقا جون ول کنین حرفا رو موی دماغ ما شدید بذار حالمونو بکنیم کیفمو بکنیم تو این دنیا خب آیا عقل و وجدان من نمیگه تو که میدونی اینا شکم پرستن تو که میدونی اینا شهوترانن تو که میدونی اینا برای اینکه راحت باشن هی دارن تلقین میکنن خب پس نباید تابع حرف اینا باشی استقامتی که در مقابل اینا باستی استقامت و صبر نباید در مسیر انتخاب هدف درسته. پس اینا دارن منو نسبت به هدف درست باز می‌دارن. منم توان ایستادگی در مقابلشون رو ندارم. چون توان استادگی رو ندارم فریب میخورم و این فریب باعث میشه که من انتخابم غلط بشه. وقتی انتخاب غلط شد، خب قطعا عملی که در راستای اون انتخاب چه میشه؟ خب این که قطعاً غلط خواهد بود. خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا می میرود دیوار کج. خب این همه جا کج میشه. حالا تو مرحله دوم فرض کنید ما استقامت باید و نباید صبر باید و نباید رو در رابطه با انتخاب هدف داشتیم انشالله انتخاب کردیم معنویت رو خدا را دین را اخلاق را انسانیت را و به این نتیجه رسیدیم آقا تو این دنیا ارزش‌های بالاتری از عالم ماده وجود داره ما گرچه در دنیا این ولی در دنیا و از دنیا نی... ما در دنیاییم از دنیا و برای دنیا نیستیم ما از ماورای دنیاییم گرچه در دنیاییم و به سوی ماورا دنیاییم حالا اینو فهمیدم اما اینجا تازه نوبت به سبر اون معنای استقامت واقعی در رابطه با باید و نباید این مرحله مطرح میشه که خیلی مهمه خیلی مهمه باید به خدا برسم خب خیلی کارا باید انجام بدم این کارو بکنم این کارو بکنم این کارو بکنم نباید برای بسوی به سوی خدا رسیدن این کارا رو بکنم بعضیا تو بایدش موفقن اما تو نبایدش موفق میشن بعضی تو نباید موفق نیستن هستن، تو بعضی بایدها موفق نیستن زمانی یک انسان در مرحله صبر و استقامت در انتخاب هدف و حرکت به سوی اون هدف تو مرحله حرکت موفقه که استقامت رو در بایدها داشته باشه در نبایدها هم داشته باشه حالا اجازه بدید من دو دوتا روایت فعلا از معصومین علیهم السلام در این رابطه بخونم تیمونند و تبرکند ابتدای بحثمون با بیان معصومین علیهم السلام شکل دیدگاه مکتب اهل البیت رو پیدا کنه انشاءالله روایت اول همه تون شنیدید چایدم حفظ باشید کافی جلد دو صفحه 87 امام صادق علیه السلام از سبر و ایمان به منزلت رأس منال جسد ف اذازه بر و ذهابالجسد که زالکه صبر و ذهابالیمان این واجد تو همه حفظین شنیدین آشنا این ولی یک کمی با توجه به این بحثی کلام بنده کردم روش دقت بفرمایید یه وقت از اصلا نوبت به ایمان نرسیده طرف میگه ایمان شیل کجارفرو حالا میاد میگه نخیر من میخوام تو بادی ایمان مؤمن بشم انشا میگه قراری مؤمن بشی برای ایمان صبر مثل سر برای جسده شما بدنی که سر نداشته باشه چیه یه لاشهی که متعفن میشه باید زیر خاک پنهانش کنید بدن بی سر که ار... اگه دستم میتونه یه کاری بکنه پام مفیده، چش مفیده، زبان مفیده همه این فوائدی که اعضای بدن ما داره و لذا شرعا موظفیم سلامتیمون رو حفظ کنیم به عنوان ابزاری در راستای اون هدف انسانیمون اما حالا این بدن سر نداشت لاشه لاشهی متعفنه باید پنهانش کنید کسی که دم از ایمان میزند قدرت ایستادگی صبر ایستادگی در بایدهای زندگی و نبایدهای زندگی ندارد مثل بدنی است که سر ندارد این بیان امام صادق علیه السلامه پس همه حرفها برمیگرده روی این ایستادگی در مسیر هم انتخاب هدف هم رسیدن به اون ارزشهای والا نحوه حرکت روایت دوم که این رو برای ما یه مقداری باز بیشتر روشن میکنه یه روایت بسیار جانانه است از امام باقر علیه السلام بهار جلد هفتاد هشت صفحه صد و هفتاد شش از یوم وقتی که قیامت برپا شد روز قیامت شد نادا منادن انبلاهی قول یک منادی از طرف پروردگار عالم ندا در میده و فریاد میزنه اینه اهل صابر کجان اونایی که ایستادن پول سر راهش قرار دادن تا از خدا جداشون کنن ایستادن گفتن نه جانشون در معرض خطر قرار گرفت برای اینکه حفظ جان کنن خدا از بین بره گفتن نه جانو میدیم ولی خدا را از دست نمیدیم شهرت و بهبه و اه اجتماعی مطرح شد گفتن نه ما یک اصل داریم هدف الهیمون هرچه در راستای هدف الهی ما مفید واقع شود تسلیمیم نباشه میجریم کنار و با قدرت میگیم برو این دام بر مرغ دیگرنه که را بلند از آشیانه عین اهل الصبر غاله امام باقر علیه السلام فرمودند فیقوموا فآم منم الناس یه گروه تو مردم بلند میشن دیگه اونجا پیش قاضی ملغबाजी که نمیشه کسی نمیتونه دروغ بگه چون واقعیت ها یومه تبلس سرائره همه چی رو میشه لذا واقعا کسانی که اهل صبر بودن با این توضیحاتی که ارز کردم اینا بلند میشن وای میشن اینا رو نشون میدن اینا صابرین بودن اینا اهل صبرن ثم یونادی اين المتصبرون سپس اون معمور الهی که قرار نداد در بده صدا بلند میکنه متصبرون کجا هستند خب طبیعتاً سوال میشه صابر با متصبر فرقش چیه اینا کیین دیگه یه خصوصیت ای قرار داشته باشن لذا از امام علیه السلام سوال شد ما سابرون ول متصبرون سابرون کیانن؟ متصبرون کیانن؟ غالب از سابرون علا ادا الفرائز ول متصبرون علا ترک المهارم یعنی با این بیانی که بنده گفتم صبر در بایدها صبر در نبایدها حالا یه روایت دیگه رو باز میده عرض میکنم اونجایی که اداء فرایض یعنی آقا جون باید انجام بدی حالا من مثال میزنم بنده یه وقت هست میگم آقا من اصلا نمیخوام درس بخونم نمیخوام عالم بشم نمیخوام دانشگاه برم نمیخوام مدرک دانشگاهی بگیرم خیلی خوب من نمیخوام دانشگاه هم نمیرم بحثی هم مطرح نمیشه اما یه وقت میگم آقا من میخوام یه پزشک حاذقی بشم در بین اطبایی قبول کنند منو که من پزشک حاذقیام میگه این دانشکده پزشکی خب دو جور صبر لازم داری صبر اول تمام زحماتی که برای درس خوندن لازمه اگه قرار شب تا صبح بیدار بمونی باید بیدار بمونی اگه قرار تو سرما و گرما بری پای درس استاد زانو بزنی باید بری اگه قراره برای این کتاب این جزبه این مباحثه اینجا بری اینا صبر بایدهای اون نتیجه است که انتخاب کردید اما صبر نباید تو نباید از کلاس فاصله بگیری با فلانی بشینی گعده کنی تو نمیتونی تو نباید الان دنبال مثلا خوشگذرانی این ورانور ور برید اون تمایلات بازدارنده از این هدف والا استادگی در مقابلش طبق روایات معصومین سختره یعنی طبق این بیان متصبر از صابر. شاید مهمتر باشه چرا چون روایت هم از پیغمبر هم امیر المؤمنین هم امام صادق از هر سه معصوم من دیدم اجتنا با سیات اولا من اکتساب الحسنات دوری گزیدن از بدی ها و زشتی ها این قدرت میخواد دیگه بخصوص نفس سرکش منو شما دوستان ناباب جوامع شیطان و شیاطین و مهرها و نوچهای شیطانی آن چنان تحریک کننده انسانن به سوی آلودگی ها و بازموندن از ارزش ها به ویژه اگر کسی قرار گرفت قرار باشه در مسیر ارزش قرار بگیره چون امتحانش آغاز میشه شیطانم نیروشو بسیج میکنه عوامل شما در نحج الولاغه از امیرالمؤمنین دارید وقتی اومدن با حضرت بیعت کنن بعد از 25 سال ببینید حضرت چی فرمودن فرمودن با من بیعت کردید اما امتحانتون حادتر بعد از اینکه با من بیعت کردید دست به دست من دادید و اومدید تو حریم من امتحانات سختتری قرار بده اینجا عواملی که میخواد شما رو بازداره خیلی سنگین اونجا استقامت لازمه لذا امام علیه السلام فرمودند امام باغر فردای قیامت صدا میزنند صابرین کیانند یا عده بلند میشن. متصبرین کلانند یه عده بلند میشن. پس اگر قرار ما به یک ای برسیم هم باید صبری که بایدهای هدف والا و نیل با اون لازمه داشته باشیم هم نبایدهایش لذا به همین دلیل اون روایت مشهور دیگر از مولا امیر المؤمنین علیه السلام در توحید صدوقم ببخشید در کافی باب صبر حدیث 15 از پیامبر از صبر و سلاسه صبر ستاس، صبر ان دل مصیبه صبر ان صبر اینجا با اون دو تای بندگی سه شده فرق نمیکنه الان ارز می کنم. اول دو دوتایی که من بیان کردم از روایتم خوندم صابر و متصبر گفتم یا به تعبیر امروزی خودمونی صبر در بایدها صبر در نبایدها که ارز کردم این با بیان صبر على الطاعه و صبر علی این دوتا اومد با همون جاییم هم که ازت فرمودن عداء فرائض و اجتناب محارم اما صبر عندالمصیبه چیه؟ آقا دار دنیا قرار دار امتحان آزمایش باشه بالاخره یه سری مصائبی برای ما پیش میاد این مصائب ما را به سوی تقیان به سوی لغزش به سوی صبری، به سوی بیتابی میبره یا استادگی نشون میدیم خب این یکی از این دو حالت میشه دیگه یا صبر بایدی میشه یا صبر نبایدی پس بعد با اون فرق نمیکنه جنبندی روایات با توضیحاتی که عرض کردم چی شد یه تحلیل عقلی هم میکنم او وقت فرمایش مولای من شما ابی عبدالله الحسین علیه السلام صبرن الا غزاک یار صبر میکنم ای پروردگار من بر غذای تو کالا غذاش رو بحث کنیم فعلا اون صبرش بحث کنیم. اجازه به دید تحلیل عقلی با هم داشته باشیم انایه بکنید ولی یه صات میخواد. هر کردم تفاوت ما انسان ها نسبت به حیوانات، نباتات جمادات حتی ملائک در این قدرت انتخاب است خب حالا بیایم سرها قدرت انتخاب قدرت انتخابی که خدا به ما داده میتونیم انتخاب کنیم نه به معنی تفییزه نه به معنی جبر لا جبره ولا تفییز بل امرون بین الامرین که انشالله فرداشب و شب غذا رو عرض بکنم صبرن علا غذایک انشاالله این رو میشکافم بیشتر ولی فعلا در همین حد جبر نه تفویزم نه این قدرت انتخاب قدرت انتخاب که منو شما داریم یعنی چی داریم که حیوان نداره چی داریم که گیاه نداره حتی ملک نداره به این معنی که ما قدرت انتخاب و اختیار داریم یک جنبه مشترکی با ملک داریم عقل یک جنبه مشترکی با حیوان داریم شهوت حیوان شهوت داره عقل نداره انسان عقل داره ببخشید ملک عقل داره شهوت نداره انسان دوتاشو با هم داره و این باعث شده چون عقل و شهوت با هم میاد شهوت میگه این مسیر اختزای شهوت چیه؟ حیات حیوانی اختزای عقل چیه؟ حیات ملکی. این انسان میتونه به وسیله این دو عامل سر این دراهی قرار بگیره به عمر صد وقتی پیشنهاد کردن برو کربلا امیر لشگر باش و با امام حسین در بیفت گفت یه شب به من مهلت بده. یعنی بین این دوتا قرار گرفت. اون جنبه عقلی وجودش که میخواد تشخیص بده حقائق را میگه آخه کشتن حسین رو که میدونم بیچارگی و بدبختیه. خیلی یزید آقل آدم یه ذره بخواد کار کنه در زمان امام حسین و یزید. بین یزید و امام حسین میتونه مثلا اصلا مقایسه کنه. یه فرمایشی مولا امیر دارن تا مغز استخون آدمو به درد میاره. الدهر انزلنی. حتی یغال معاویه و معلی آخه ببینید روزگار به کجا رسیده میگن معاویه و با... مگه خب قابل مقایسه است خدای بر اولو به درجات مرحوم علامیه، تبا تبایی بیفزاید رزوان الله تعالی علی تو این کتاب بسیار کوچک یک دنیا مطلب شیعه در اسلام یکی از ظرافت هایی که ایشون در اون کتاب بخرج داده میگه شما کسانی که دوربر علی بودن و برای علی سینه میزدن کسانی که دوربر معابیه بودن اصلا این دوتا رو مقایسه کنید ببینید اینا کیا بودن اینا کیا بودن از اطرافی های علی همه انسان های فداکار شجاع صادق زاهد عابد عالم متقیه و همه ولو بعد از امیر شهید شد. همه شهید شده حتی به مرگ طبیعی هم از دنیا نرفتن در استادگی در مسیر عدم اطرافی های معاویه که بودن آدم های شکنباره شهوتران دنیا پرست چاپلوسی که دور معاویه را گرفته بودند برای چند روزه زندگی خودشون اون همه شیطنت ها و معاویه ها را گنده میکردن تا حق را اونگونه مظلوم قرار بدن خب آقا انسان عمر صد انقدر نمیفهمید که بین امام حسین و یزید قابل مقایسه. مشکل در چی بود صبر در مرحله انتخاب بین این دو تا هممون این صحنه رو خواهیم داشت در زندگی ها برای هممون پیش میاد ولی به صور مختلف الان حسین انتخاب حرم بود دیگه خب حرم بین این دو تا حرم انسان بود عمر سعد انسان بود حرم عقل داشت و شهبت داشت عمر سعدم عقل داشت و شهوت داشت اما این قدرت صبران استادگی کردن در اون جایی که ما در این سر دو راهی یا چند راهی قرار میگیریم، گیریم اون قدرت خدایی ما که عقل است به کمک روشنگران بیرونی ما که انبیا و اولیا هستند این رو تحریک کنن بگه آقا جان واس اون رو بگیر لذا خور عقل نداشت گفت امیری لشکر یزید رو نمیخوام عمر رو نمیخوام دنیا رو نمیخوام شهادت رو میخوام او تشخیصی که میده بر مبنای عقل بین این دو گذرگاه میگه حالا من و شما یک خدا میدونه صادقانه میگم من شاید هر سال تو ایام محرم این به ذهن من میاد غیر محرمم میاد به خودم میگم گاهی بلند با خودم تو اتاق عرف میزنم یکی بشنبه ممکنه خندش بگیره برای تلقین خودم میگم میگم فلانی یک کمی بررسی کن هر عمر ست کدوم یکی بردن کدوم یکی بردن آقا چند سال عمر صد بعد از کربلا زندگی کرد شش سال مختار خروج کرد این شش سالم زندگی که نبود حتی تو کوچه های کوفه راحت نمیتونست از خونه بیاد بیرون چون بچه ها سنگ میزدن میگفتن این قاتل پسر پیغمبره بعدش هم که ترس و لرز و بعدم اونجوری به درک واصل شد خب حالا خورد قرار بود چند سال بعد از کربلا بمونه؟ ده سال، بیست سال، سی سال، پنجاه سال؟ خب بود بره دیگه اگر سال مانی بر یکی روز بباید رفض این کاخ دلف روز خوش است این کهن پر پرفسانه اگر مردن نبودی در میانه از اون سرد آمد این کاخ دلاویز که تا جا گرم کردی گویدت خیست خب حالا هر چند سال دیگه هم میموند یکم چلو کباب هم یک کمی شد زردایم هم یک یکمی هم چار تا لباس بیشترم که اما در عوض چی میشود از روز آشورا ولی یالله اعظم امام حسین سلام الله علیه تا امروز امامان بعد از امام حسین تا امام عصر امام عصر تمام این هزار و خرده سال تا امروز السلام علیکم یا انصار دین الله و ابداعه سلام بر شما یاری کنندگان دین خدا و دوستداران حامیان دین خدا سلام حجت خدا هر صبح و شب خطاب او شده جوان یک یکم در مقابل شکم و شبعت. در روز آشورا امام حسین داره با خدا حرف میزنه ارز که حرف امام حسین با خدا حرف امام حسین با خانواده حرف امام حسین با لشکریان با اطرافیانم که امام حسین خواست صحبت کنه سبرن بن الکرام و مل موت الاغن سره این درس بیاموزیم با خدا که داره درخواست میکنه به دو معنی بگیرید یک درخواست دو اعلام که خدا یا چشم من هم چوبنده ایم من وای میستم و نشونم داد خم به عبرونه یاورد همه مسائب کربلا لذا همه هر هرچه به اصر آشورا نزدیکتر میشد چهره امام حسین بشاشتر بود و در اوجش که تو گودال قتل گاس و شمر جالسون علا صدره فزهک الحسین خندید چه خنده ای؟ در مسیر عشق دوست در مسیر محبوب تونستم واستم همونی که باباش وقتی شمشیر در محراب عبادت به فرقش فرود آمد فرمود فز تو وربل کعبه به خدای کعبه سوگن رستگار شدم لذا وقتی پیغه آقا عجیبه برادر من خواهر من پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمود علی جان این تو به خون سرت خضاب میکنن امیر المؤمنین پرسید یا علی استفام انکاریه هر دو میدونن چون نفس پیغمبره برای فهم من و شماست یا رسول الله با حفظ دینم در مسیر رضای خدا پیغمبر فرمود بله فرمود خواب الحمدلله یعنی میتونیم یه جوری واسیم مصیبت ها درد خستگیها، تنهایی ها ما را از مسیر رضای خدا به در نبره پس ما انسانیم عقل از این بر شهوت از این بر شهوت نمیذاره عقل خوب کار کنه سعدی این دو بیتیشو خیلی قشنگ میگه حقیقت است آراسته هوا و حوست گرد برخواسته نبینی در اونجا که برخواست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد انصافاً قشنگ گفت حقیقت است آراسته هوا و هوس گرد برخواسته الان بنده ساعت روبرومو دارم میبینم الحمدلله بینایی دارم ساعتم اونجاست دارم میبینم ولی حالا بین من و این ساعت یک گرت و قبار زیادی بلند بشه بخار زیادی بلند بشه من بینا هستم ساعتم اونجا هست حضرت عالی از بنده میپرسی ساعت چنده میگم نمیتونم ببینم چرا نمیتونم ببینم؟ چون مانع بین من و ساعت میگه هوا و هوس بین عقل و حق اون گرد و غباری است که برخواسته و نمیگذارد ببینی پس اینجا استقامت و ایستادگی در زدودن هوا و هوس میخواد لذا انبیا آمدند به ما تعلیم بدن ولی قبل از تعلیم هم و کتاب و اگر کسی تزیکی نشود ولو تعلیم ببیند چو دزدی با چراغا گزیده تر برد کالا میشه دادن تیغ دست زنگی مست میشه تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را است علم و بال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران پس این گذرگاه وجود انسانی عقل و شهوت عقل بود شهوت نبود که ما انسان نبودیم فرشته بودیم شهوت بود عقل نبود که انسان نبودیم حیوان بودیم ما انسانیم و انسانیت ما به همین است که در گزرگاه های تحریک و برخواستن گرد و قبار عقل گرد و قبار هوای نفس و شهوت سر راه عقل این گرد و قبار را فرو بنشانیم، این میشه استقامت در مسیر الهی و اونایی که در کربلا نشون داده نمونش خم به نیاوردن هیچ چیزی اونها را از میدان به در نکرد آقا امرو اصر کربلا مگه شوخیه ما از بچگی شنیدیم یک کمی شاد برای ما عادی شده باشه یک کمی بینی و بین الله خلوت کنیم در نظر بیاریم چند روز این زن و بچه رو محاصره کردن آب رو که قطع کردن تشنگی که داره گروسنگی که داره اون همه حرص جوش و از که دارن امروز هم که جلو چشمشون نه فقط پسر برادر برادر زاده همسر بگیم که فقط اینا نه عزیزانی که معرفت اونها میفهمند من پریشب تهران این مثالو زدم گفتم آقا اگر شما الان تو شهرتون یه پروفسوری داشته باشید بگه من توانستم سرطان رو مداوا کنم راستم باشه فرض کنید که امیدواریم انشاءالله تو جوانای ما اینا پیدا بشن افتخار شیه باشن بگه آقا من تو دنیا اعلام کنم من سرطان رو مداوا میکنم دیگه سرطان قابل مداواه خب حالا ما ببینیم توی مثلا شهر اصفهان هر کی میرسه به این پروفسور خوش بده یه سنگ بزنه شما اذیت میشید یا نمیشید بگید آقا کیو داری میزنی با کی درفت افتادی؟ این انسانه به درد بخوره حالا اصحاب ابی عبدالله می دونن امام حسین یعنی کی حضرت علی اکبر یعنی کی من که نمیفهمم فقط انقدر رو بگم وقتی حجت خدا میفرماید فرماید اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله حالا خلقش که تعجب نداره خلقش انك لا اله خلق نازيم نثش و ما ينچ قا ان الهوا انه و الا وحي يوها از این كلام بوی اسمت برای حضرت علی اکبر در میاد اشبه الناس خلقا و خلقا و, و منطقه حالا اینا رو اربن اربا کن جلوی چشمی و بچه آقا یه جوون 13 ساله بیاد بگه نه اینکه حرف باشه صاحب ابن عباد تو شهر شما مرد بزرگ استا خیلی مرد بزرگیه این شعر صاحب ابن عباد رو من خوندم اینجا سالای قبل. کیف میکنم با این شعر حال میکنم؟ یا امیر المؤمنین المرتزا این قلبی اندکم قد وقفا کلما جدت و مدهیفی کمو غال از اون سلفا من که مولای علی زاهدون تلق دنیا سلاسا و وفا من که مولای علی... من میگید مولا علیه کی مثل مولای منه؟ تلق دنیا سلاسن دنیا رو سه طلاقه کرد نه با زبان و وفا تو مرحله عمل نشونداد. آقا تو عمل نشون داد نه حرف دو گفته چون نیمه کردار نیست. یه جوان سیزده ساله نوجوان امو فردا قرار هممون شهید بشیم. اموجان منم ابتدا امام چی میپرماد؟ عزیز من مرگ در نظر شما چگونه است؟ امو جان اهلا من الاسع؟ اون وقت این انسانها را گونه به شهادت برسونند، حتی اگر برادر من، فرزند من، برادرزاده من، پسر عموی من نه به اندازه ای که من انسانم رنج میبرم یا نه به اندازه ای که شما ارزش یک طبیبه که میتونه مثلا سرطان رو مداوا کنه براش ارزش قائلید ببینید همه به او تهمت میزنن فرش میدن سنگ میزنن رنج میبرید یا نه رنج بردن یک انسان بر مبنای فهمش نسبت به ارزش هاست حالا رنج زینب کبرا چیه مثل روز آشورا مقام امامتی که زینب کبرا از امام حسین میدونه دونه لذا اون عبارتی هم که همتون شنیدید وقتی امام حسین اومد ودا کنه حضرت زینب اول خیلی بیتابی کردن امام حسین فرمود خواهرم جد من پدر من مادر من برادر من حضرت زینب چی پرمودن از خمسه طیبه شما منده اید یعنی بحث خمسه طیبه در عالم وجود الان خامسش داره از دنیا میره همه اینا رو زینب دیده حالا امروز امشبم هم اومدن همه این صحنه‌هایی که اشاره اشاره‌ای خواهم کرد ایجاد کردن فردا وقتی میاد از کنار گودال قتلگاه رد بشه یه نگاهی میکنه شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه خنجر شکسته ها رو کنار میزنه نیزه شکسته ها رو کنار میزنه سنگا رو کنار میزنه دستو میبره زیر بدن مبارک یه تکونی میده میاره بالا سر با آسمان بلند میکنه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن اون وقت جوان سمبل پسند باید باشیم شما معشوق و سمبولی قشنگتر از علی و آل علی سراغ دارید که دل به جای دیگه بدیم عمریز کدم بدم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم یک عمر علی گفتم و الله تا آخر عمر هم علی میگویم اینا خانواده علی ان. اینا نمونه ارزش های بالای انسانی در عالم وجود ان. او وقت استقامت و صبرشون رو ببینید. حالا عبا عبدالله حسین علیه السلام یه خیمه ای رو کربلا دارالحرب درست کرده بودن. اجساد رو حضرت می آوردن توی این خیمه کنار هم می شیدن. چند تا جسد یکی حضرت علی اکبر بود که امام حسین خودش نتونست بیاره. فرمود جوانان بنی هاشین بیایید. علی را در خیمه رسانی. یکی بدن قمر بنی هاشم بود که قرار شد کنار القمه بمانه. بدن خود عبی عبداللام تو گودال قتلگاه بمونه. ولی بقیه ابدان عبدان متحر رو توی این چیز سرها جدا نشده بود. امرو بعد از ظهر اول اومدن جلو چشم زن و بچه سرای شهدار از بدنشون جدا کرد به نیزه بزنن ببرن. عمر سعد گفت سر علی اسخا بدن علی اسخر اینجا نیست سر علی باید بفرستیم علامان نقل نمیدانم میگن گفتن که دیدیم امام حسین وقتی از میدان برگشت رفت پشت خیمه ها. احتمالا پشت خیمه ها تو این ها تو این ماسه ها دفع کرده باشه فرصت کندن نداشتن دستور دادن با نیزه تو ماسه ها بزنن ببینن بدن در میاد که سرش جدا کنن یا نه. به این اکتفا کردن؟ نه. گفتن اسبها ها رو نعل تازه بزنید. اسبه هم تازه زدن. روی ابدان متحر تازندن. به این قناعت کردن؟ نه. گفتن خیمه ها رو آتش بزنید. خیمه ها رو آتش زدند. به این قانه شدن؟ نه. گفتن غارت کنید. گوشواره رو از گوش می کشیدن و گوش و پاره می معجر رو از سر بردارن. همه این صحنه ها اما زینب سلام الله علیه ها و, و استقامتش رو ببینید. وقتی که این زن و بچه رو جمع کرد، یه خیمه نیم بر برپا کرد، اینا رو به هر زحمتی آرام کرد. یه وقتی دن زینب یه گوشه مشغول راز و نیاز و عبادت با خدا شد. ولی خوش دل دختر مرتزاس ز دل راضی او بر رضای خداست. اما این کربلا بود، این سر شهدا تو کربلا بود، سر ابی عبدالله چی شد آقا؟ وقتی که سر عبی عبدالله رو از بدن جدا کرده، دادن به خولی خولی اسب تندروی داشت خودش هم سواره چابکی بود گفت زود برو به کوفه برسی سر رو بدی به ابن زیاد بگی کار تموم شد ما میمونیم فردا این کاروان رو حرکت میدیم خولی سر رو آورد زمانی رسید به کوفه که حکومت نظامی بود، در دارالعماره بسته شده بود. گفت خواب سر رو میبرم خونم، صبح زود میام. اومد خونه، زن شیعه بود، علاقمند به امام حسین بود. در خونه مطبقی داشتن، تنوری داشتن. سر آبور تو تنور گذاشت. روی تنور رو پوشون، اندرون. نیمه های شب زن خولی پاشد نماز شب بخونه، دید مثل این که توی تنور روشنایی میاد امشب کسی توی اونجا مشغول پخت و پزه اومد دید از تو تنور، در تنور رو برداشتش سر وریده شایدم صدایی بیومد عزیز مادرم حسین کربلا <laughs> <مصدقا> میرم بدن بی رو میبینم kufe mi am sarbi bedel usubi sallallahu aleika ya muwallay ya, Abdallah, ya يا سيّدنا ومولانا إن توجهنا واسجدنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ya wajliha walam inda Allahumma bismik an azim, l'azim, l'azim, l'ajal, l'akrab. Ibbimulana sahibizamun ya Allahumma. جنا يا الدعوات كل و یا نیاسان مزترول ويا و یا الهل و دلیل یا کریم نجنا و الرحمن الرحیم I <speaking> will <in foreign language> مزمز تر رزادا و یعنی بكيلا مستني سر فاقمام الى اي يا ويا یا قدیم الحسان به عنل خسین و تسعت المأصول منظریت خسین الله حمّد جل الله, عجل الله عجل من صاری وامانه اللهم انصر من نصر الدين واخز من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشمل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عقب امورنا خيرا اللهم ارفدنا لما تحب وترضا اللهم لا تسلج علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لوالدي والدينا ولدي و لمن وجب له حق علينا و لمن وسانا بالدعاء يا رب المحسنين ایش به صدر الحسین به حق الحسین به زور یا رب الحجیان به حق الحجیان ایش به صدر الحسین به زور وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب